موسیدن که چرا در حدیثی کسا حضرت زرام می برقرار درکتن امه دیگه امه این که حضرت خطاب ایشون که امه ابیها این تعارف نبود گاهی پدری میخواد با دخترش حسان محبت داشته باشه واجبم هست که پدرها دخترایی که تو کونه در درور بگیرن ببوسن محبت کنن چون احتیاج داره اقنابشه بیرون به دوتی کلال مثلا آدمای ناجور منحرف ناشه ولی وقت نه پیغمبر داره صحبت میکنه پیغمبر وقتی ایشون رو میدید خطابش این بود که ام ابي ها ام یعنی مادر، این کنایه بود، پیانبر میخواد بفرماید که این ریشی پدرشه، بون پدرشه، پدرش که اشراف مخلوقات، بونش پاتنه سرامون علیه هاست.